بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بخشندهی مهبان یا ایوان مندفر به سر خواب آمیتر قم انذر بخی و انساو کن وقت پر بخکارت سا بزار بشمارش و فطهر بعد لباست را پاک کن و روی زبهزر و از پلیدی خواب و لا تمنون تستکر و منت مگذار و لربی که قصبر بعد شکی کن بهذ که در سووب دمیده شود بذلی یوم ایزیمون روت سختی علی به پین غی ومن خلقت مرا با کسی که او را تنها آفریدم قصار و جعلت لهو مالم مندود و من کس که برای او مول و قرار دادم و شهودا شهود و فردندانی که هم او هستند و مهدته لهو تمهیده و با ساویل را از هر نظر برای وی را هم ساختم سم یخمع ام ازید با سم تمک دارد که بر او بیت ساخم کلا اینهو کان هرگز چونی نخواهد شد چرا که او نسبت به اوگیات ما دشمنی می بستند بسوژی او را مجبور می کنم از قلعه سندکی بالا با را بد مسلمان او اندیشه کرد مطلب را آماده ساخت. مرد بر او باد چگونه مثلت را آماده کرد؟ ثم قتلت ایف قدر باز هم مرد بر او چگونه مثلت آماده آمد؟ ثم نور سپس کی افگان ثم عبس و بشر بعد چهره در هم کشید و اجولان دست بکار شد ثم اذبر و تتبرد پس پوشت بحث کرد و تکبر ورسید فقال این آزا ایلا شحرون یکزر باقران جمکو این چیزی جز یک سهر جالب همچون تحقیقی پیشنیان نیست این آزا الا قول البشر این جوز سخن انسان نمی باشد اما بسودی او را بارت دو سخت می کنیم با تو نمی دانی دو سخت چیز چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را رخامی سفد فستنرا بكل اعتقار غون ميکند آي نهيست ساعت 17 نفس فرشتگان بر آن گمارده شده وما جعلنا اصحاب النار الا وما جعلنا عدتهم الا يتقرون يستين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يزداد الذين أوتوا الكتاب. يقول الذين في قلوبهم مرضوا ويقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء وما ما یعلم ذنود ربك الا ایلا هم و ما یعلم ذکران البشر معموران دوزخ را جز پرشتگان قرار ندادیم و تعداد آنها را جز برای آثمویش کافران معین نکدیم تا اهل کتاب یقین پیدا کنند و ایمان مؤمنان افسوده شود و اهل کتاب و مؤمنان تردید به خود را ندهند و کافران بگویند خدا از این توصیف که منظوری دارد آری اینگونه خداوند هر را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند سا و لشکریان پروردگارت جز او کسی نمیداند و این جز هوشدار و تذكری برای انسان خوانی. کلا <تصفح> والقام. این چنین نیست که انها تصور میکنند، تاگان و ما. والليل إذا ضلوا. و با شب هنگامی که پاوشت کنند. والصبح إذا أستوا. و با صبح انگامی که چهره بگشاد گذشت. این خردل که آن از مسائل مهم است ن للبشر هوشدار و انتوری برای همه انسانها لیمن ش انگیت با و اویت برای کسانی از شما که میخواهند، تقدم جويان یا اقل بمانند قل هر کس در اعمال اصحاب مگر اصحاب اليمين في جنات آنها در باغ های بهشتند و سآل می کنند المجرمین از مجرمان ما سلککم کنی سفر چی چیز شما را به دوزخت برستاد قال لم نکو من المفلین می گوگند ما اصلا مازکساران نبودیم ولم نکن طایب المسکین و اطعام نمی کردین و کننا نقوب مع الخائضین و با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودین و کننا نکذب بیوم و هم بار روز جزاره کار میکردین حتا فاستمانی که مرگ ما فرا رسید فما تنفعهم شفاعت الشافعین فاست شفاعت شفاعت کنندگان به حال به آنها سوت نمی بخشید فما لهم عنی تذکیرات معرضین چرا آنها این همه از تذکر گریزانم که انهم حروم گوی آنها گوره هستند رمیده که از شیر فرار کردن بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامی جداغانه از سوی خدا برای او ساده شود چون این نیست که آنها میگویند، گویند بلکه آنها از آخرت نمی پرسند چون این نیست که آنها میگویند، گویند قرآن یک تذکر و یاد شاء ذكره هر کس بخواهد از آن پند میگیرد گیرد و ما یذکرون الا الله هو اهل التقوى و اهل و هیچ کس پند نمیگیرد مگر این خدا بخواهد و اهل تقوی و او